11 دهم، محیط کارتان را مرتب کنید. افراد بسیار کارا روی یک میز تمیز و یک محیط کار تمیز کار میکنند. افراد ناکارامد بی بازده و سردرگم نیز نقش خود رو بازی میکنند. محیط کار اونها معمولا طوریه که انگار نارنجک در اون منفجر شده و کاغذ و پرونده ها رو پخش و پلا کرده. شما نباید اینطور باشید. خودتون را عادت بدید که همیشه محیط کارتون رو مرتب و روی یک میز تمیز کار کنید حتی اگه مجبورید همه چیز رو از روی میزتون بردارید و پشت سرتون روی زمین یا در قفسه بگذارید بازم میزتون رو تمیز نگه دارید امروز حداقل سی درصد زمان کاری صرف گشتن به دنبال چیزی میشه که سر جاش نیست وقتی افراد میگن که روی یک میز به هم ریخته بهتر کار میکنن معلوم میشه که اصلا چنین چیزی نیست وقتی همین افراد وادار میشن محیط کارشون رو مرتب کنن و یکی یکی روی موارد کار کنن ظرف 24 ساعت کارایشون دو برابر میشه خودشون هم از فهمیدن حقیقت متعجب میشن برای تموم کاغذاتون از فرمول ب، الف، این، ب استفاده کنید بیاندازید، ارجا دهید، عمل کنید و بایگانی کنید ب، الف، این، ب سطل آشغالتون یکی از مفیدترین ابزار مدیریت زمان در دفترتونه. هر چیزی که احتمالاً میتونید قبل از اینکه گرفتار خوندن کاملش بشید دور بندازید. این به خصوص شامل تبلیغات پستی، اشتراک نالازم روزنامه‌ها و مجله‌ها و یا هر چیز دیگه‌ای میشه که به اون نیاز ندارید حرف دوم الف مخففه ارجاست. این چیزیه که کس دیگه‌ای باید به اون رسیدگی کنه. روش یادداشت بگذارید و بفرستید بره. هر وقت که ممکنه هر چیزی که میشه رو تفویض یا ارجا کنید تا برای انجام کارهایی که فقط خودتون میتونید انجام بدید وقت بیشتری داشته باشید. حرف سوم عین مخففه عمله. برای این کار از یک پوشه قرمز استفاده کنید تا جلب توجه بکنه. پوشه عملتون شامل همه چیزهایی که باید در آینده قابل پیشبینی در موردشون عمل کنید. با گذاشتن چیزها در پوشه عملتون به اونها رسیدگی کنید. و از سر راه برشون میدارید حرف آخر ب ب مخففه بایگانی است. اینا کاغذا و مدارک هستند که فکر می‌کنید ممکنه بعداً احتیاج داشته باشید که در دسترس باشند. اما قبل از اینکه چیزی رو بایگانی کنید یادتون باشه که 80 درصد چیزایی که بایگانی میشن هیچ وقت دوباره بازخونی نمیشن. وقتی روی چیزی یادداشت می‌گذارید که بایگانی بشه دارید برای کس دیگه‌ای کار ایجاد می‌کنید. قبل از بایگانی مطمئن بشید که این کار لازمه. این روزها متخصصانی برای مدیریت زمان وجود دارند که چند صد دلار میگیرند تا به مدیران کمک کنن میز کار و دفترشون رو مرتب کنن. یکی از اولین کارهایی که این کارشناسان میکنند، اینه که به مشتریاشون کمک میکنند توده های اطلاعاتی که مدیر برای خوندن در آینده نگه رو مرور کنن. قانونش اینه که اگه در 6 ماه گذشته نخوندینش پس دیگه به درد نمیخوره. دور بندازیدش شعار من برای تمیز نگه داشتن دفترم اینه هر وقت شک داشتی چیکارش کنی بندازش دور این روش در مورد لباسهای کهنه وسایل منزل کهنه اسباب بازیهای کهنه و هر چیز دیگه ای که زندگیتون رو به هم ریخته هم کاربرد داره خیلی از آدمها در نگه داشتن مجله ها تبلیغاتی روزنامه ها و بقیه اطلاعاتی که از راه میرسه آشغال جمع کنن. اینا توانی در دور انداختن چیزها معمولا از فقر در کودکی یا والدینی که در کودکی فقیر بوده ریشه میگیرن واقعیت اینه که هیچ وقت نخواهید توانست همه ای اطلاعاتی که روزانه به دستتون میرسه رو بخونید باید خودتون رو منضبط کنید تا به محض اینکه توانستید اونها رو دور بندازید محیط کارتون رو تمیز نگهدارید و در هر زمان فقط یک چیز رو جلتون بگذارید این عمل کاراییتون رو به نحو چشمگیری افزایش میده